چرا مردم دوست دارند زبانهای خارجی را یاد بگیرند. همه مردم دلایل متفاوتی برای یادگیری زبانهای خارجی دارند. محمد میخواهد زبان انگلیسی یاد بگیرد زیرا او میخواهد در آمریکا درس بخواند. لسلی میخواهد زبان فارسی یاد بگیرد زیرا شوهر او ایرانی است. مرتزا می می‌خواهد زبان فرانسوی یاد بگیرد زیرا او عاشق غذاهای فرانسوی است. مجید می‌خواهد زبان چینی یاد بگیرد زیرا او قصد دارد به عنوان توریست به آنجا سفر کند. مریم می‌خواهد زبان عربی یاد بگیرد زیرا او مسلمان است. چرا شما می‌خواهید زبان فارسی یاد بگیرید؟